له زاحمت مجموع الله به رحمت که یا رحمت را خب ل و بقیت کلام یعنی حول بعد کلام ما يتعلق اجمالت تابعا الان تعرفنا به کلمات جمعه من از سنه فی ویل مدخفه العبادات و نقل ناظر و الاحوال یکل کلام فی ما افاده و استاد و انشالله نذکر بقیقت الکلام انده تعرض بقیقت الاحوال و عدلت ها الله. قال قدس الله مفسد و بیان ذاله که یحتاج الام و نمکل بحب العمر مطابقاً لما افاده رحمه الله لبحب الفوارد طبعاً مراده من مقدمة یعنی مجموعه مقابل لابده اندر قبل الولود فلزه و اللهیه فلواقه ادت مقدمات اون مقدمتون واحده لایوتسالا مقدمتون واحده و قدمتون سالالله الائیم الاخوه در کتاب به ان یشیر از المقدمات. قال لهی اندان، ها دی المقدم اوله. اننا ما ذکر مانل احكام شریعه و تا کالها امور اعتباری. بله، ها دی هی المقدمه اوله فی کلامی قدس الله نفسه. اندان المقدمه الاولى ذکرها بسته اجمالی. المقدمه سومی قال من ناحیه بعد سفینه هریه این مقدمه سومی. المقدمه سومی آخر سفینه من ناحیه سومی این لحظه اعتباری متعلق و خطا متعلقا و موضوع متعلقان و موضوع سی خب نه نادر المقدمه بعد مقدمه اخرى تعرب لها با اصطلاح الوصال، ب... فی صفحه 33 آخر صفحه بعد که مقدماتی است، مقدماتی است، مقدماتی است، مقدماتی اما الامر الول ذکرنا غیر مرتب اما الاحکام شرعی اعتبارات سر امور اعتباری تعرد رضا صلی اللہ مصدر اما الاحکام شرعی امور اعتباری صرف و المراج من الامر لا اعتباری و تعبیره ما لا واقع له في الواقع. لا واقع موضوعی لها ما عدا اعتبار من بیدهی حل اعتبار اعتبارتون عنها بشه یعنی به عبارتون اخرام اورد حالی بالمقدمه الگستاد رحمه الله اورد حال بیان انهو قدیل کرد تی کتب الحصول مثلا خادا سبرون خادا شرطون فی الاغود فی المعاملات مثلا شرط رو کرد و رو کرد عراض ان و به اصطلاح و المطلحات سلسلیه انها تعذر عن عمر واقعی نفس العمری یعنی اونا بین شعر ما يكون دخیرن که سلسل که وجودی و تار بین یکنو و خارکنو شرپن و خارکنو و الاخرین و بحسب و اصطلق هلو سوه ها تیضاوه لی اعتباقه قادر قالو شرط و سلبون فمعنه الشرطیه و السلبیه انهو لاغود در نفس اما به نحوه اما به نحوه الذي هوه لهو تأثیرون که اصابلیت و فاهمیت اصابل و سعراناً أستاذاً يأكد أنه حصولاً في بعض الاعتبارات الغانونية لا يوجد حديث وشعبية ولا السببية ولا المانعية ولا أطلال بالتعبير هي الاعتبارات الغانونية من سنخ الاعتبار الذي أمره بيد المولا بيد من بيد الاعتبار يعتبره فيه سيكون موجوداً لا يعتبره لك ليس هناك من الأمور الوارعية بحيث أنه خودش یه واقعا سبرون. شمسون. و خودش و عبارت بدن، آن عمل ایتباری الامر تصاویر، ای الامر است. عمل ایتباری و لا واقع, له. لا واقع و در تصاویر، آن عمل ایجادی، یعنی کل عمل، النفس الانسانی، تبقیم و جعب آباره ایجاد، نمو عمل امور اللتی خوابه از اون و شوابت و در آمور و در اعتباری یه النفس، النفس ما نظر و خواهد از وقت طبعاً اجمالت صحیحون دارش کار محمدت آمن معلی و از امور داعتباریه خود من جد اخرى کان و لازار از موجود و هم موجود و از نمو فکرش و و از یکی دو هن می‌گردد. یکی دو هن حکیمی است. الان المجال دا باشد. مثلاً از باول می‌دانم، این خارج وجود دارد. و له اعراب مثلاً مستقیم داره. داره عرائض مثلاً آبی، له عدف اعرام به اضافه یمین اصال اعرام به کیف عبیل آخری له اعرام هونه سؤالون انه کما انه ها دل خارج، ها دل من قبید ال اعرام کما انه ال مو به شکل دارید سمخون من الاحراب موجود از اوها الاحکام و دحل خائف لمایون شکل کماللو رو انو عبید و مختیمون اولید و من جولت احکامی انو مو علی مویون او علیه وش نمیخواب آدم یعنی جواز استقاهاله ایضا مثل لون و مثل طول و ولی ازا قد به اندل احکام الی قوانین شعریه ندل قوانین عرفیه قوانین الارفیه, الارفیه لیست امزا دیان نقطه واقعی از زولیه لها واقع خود غنده ها انسان یک دسته ها اون اما مده از زولیه از باید نمازه هایی که امام از زولیه یا کل این رو بخورد اصلا طبیعت زولیه فی ها لها خصوصیه طبیعته. این پتو یک فطرت یک طبیعتی داره لها خصوصیتاش، علاوه بر در اصطلاح تفنن صالحه، لژنوم علیها، لیلوس علیها. بعضا غیر صالح لژنوم علیها، بعضا صالح لژنوم علیها. پس ما یکی از خشنه کرد. فا که ما اعمال اعراب امور واقعی متعسده، احکام هم ایوان امور متعسده. فمراد استاد من هر اعراب من هر مقدمه اولا، ان احکام نیست امور متعسده. لیکن خیز الوالداله یوجد فکرته خطا في الغرب موجود را این بعض المحالات لبعض الغربین الان الاسم. اثبات به انهو الاحکام من الاعراب و حد و واقعا نفس الخوف القانون الصحیل القانون الزاقی الصحیل قانون لبیه صحیح یعنی یک الواقع مو یا اثیت، یک یک در یا القانون صحیح اول قانون لبیه دیمون برلخارت، قسائط الخارت، قوة الخارت فیدون الخارت ما یفلح و اما لا یفلح الحايد لا يفعله النوع العادي أو في المجالات الحايد ما أنه يمنع من الحر، من الشمس، من الهواء وكذا الحايد مُواجب للإنسان يعني واجب للإنسان أن يصنع بيت في حايد مو أنه بيت في لا حايد لَهُ وجود الحايد ما أنه يعتبره حاومي. لكن فی الواقع اتحادمون لعمر واقعی و سبقا شهرنا انصافا ان من مجموع شواهد هادر محنان یعنی انصافا انه هنال واقع محنون است هنال برایتون الامام یهول هادر السفر لها حدون الملح لها له له حدون ماون لها حدون له لها حدون الامام یبین الهدود لها اشیاء که امور واقعی واقعی و لا اشکاری یعنی به عبارت اخرى لا تفاوتی ارتباط بین انسان بین ذاتی و افعال و تصرفاتی و بین اشیاء خارجی موجود مثلا پیراسه انسان شد مثلا مثلاً شایز و شهوات اشیاء مناسب ال عنتجی مناسبون ال لیکن از آسانه همونها نباز هم میانید مثل علاقه و هستم مرحله هم خب هاده نباز داری اتنام سرمه بدن اینسان یه ام روی عدن اینسان فا همونها چه داره لیست فسته افتاد فسته افتشاف لما نستشه ان من بدنی اتنام سرمه ال اعشابل بلانیه مه ال نبازل بلانیه مه الحت سر بالزدن مروات از مناتب مثل هم باگاه قراران به نظر بودخوا الظلب اون مربون آخر خ مننای اعتبار اون کارونیه واقعی گرفت همین انسان عنوان ماقع س شیاء تو ای از حاضز او نوا به مشابه داره نه ان ن احکان ها اعتبار مثلا وإجمالها بالنسبة إلى النفوس الأرسي و بالنسبة إلى الأمنياء والإمّة عليهم بالإطلاع الله لهم على ذلك والتصرف لا في نفوسهم لأن صارت الله في صرفهم على ذلك والصارت الله سبحانه وتصرف في نفوسهم بحيث هذه النفوس تستعد لأخذ المعلومات من كل شيء الموجودة على ذلك فالليسر مزعيد لیکن این سا فرقا یه الان معلقا من تعامل به اعتباری چه عدم و و به مولا اشکاله دید. و قطعا تعامل یعنی سلسله طولی من عدل و اسبال و معلوم معلولات موجوده شد علی و مثلا شر و و نانمان عدم و كل که موجود لکن انسان هالحد و هالرسه نحنا الان فی دراسات اصولی نه من از احکام من هایی از آنی لاین که این دو اصول این که آن را نشی علیه آن تعامل لأتبار. از آتن به تغییر استاد مالا واقعی موری نفس به تغییر انا، امور و نفس به ابداع یعنی، نفس، نفس الانسانیه, الانسانیه من سلخ الادراکات الابداعی از الان نمس حیث و طب ده عن و هاد الابداع لا و عبارتون ان اعقار حدن بشه لاننا صبر ام بکرنا ان مهاد الابداعات هل عبارتون ان ملاحظه شيء دلحاب و مثلا یلاحظ مثلا هاد الخائم یلاحظ حضرت بحثانیه یلاحظ مثلا هاد الكتاب به اعتبار انها در کتاب لم یکون موجودند فسار موجودند عنه صفت امکان صفت الحدود و به اعتبار ان انه شریکتباری ممتنعان یلتظر به همینه صفت امتناع اجزادی ها دیگه علاقین اما اعتبار لا اعفار جعل. حقیقت اعتبار کانونی خباً جعب را اعتبار مجرد انتظار وعنه ها یلاح و زیب و اقناه ها یمتزع منه ذکات، از ریفت از ذکات یعتبیرها یجعلها، نیست جزاکیه طبعاً جزاکی قطعاً نیست جزاکیه این نوال کلافی مبله عرم جزا علا التي أخذها الأستاذ رحمه الله المحلت لا عدد الآن بلحاظ الغسول التي نظر سهل صحيح المقدمة الثانية قالت عدم مننا أن حقيقة الناج ووافعه الموضوعي اعتبار شارع محرومية المتلف هذا الفعل و بعده و عن كلام الدكتور مصطفى في باب الاهوار فی باب النواحي خلاصه نظر الاستاذ رحمه الله ان الامر الناه لا يدل على, على, على لا ان عباره عن خط المقلع يعني يعتبر في افق الناس شيئا ويبرز هذا الاعتبار اعتبار آن رهاگران یارا اشاره کرد که زیبی ازی به صلاح است که زیبی به محل باز یارا محل بازی زیمه زیب است که زیبی ازی به محل باز یارا محل بازی زیمه به محل ها در مطلب افاده بالاستاد ولی فی صفحه ثلاث و ثلاثین انما هو المعروف انشاء المعنى بالله خناک و اشار الى آدر المطلب خلاص تو ها مطلب المطلب و رابع بالاستاد خوب. الاستادی اعتقد انن فرق بین الاخبار ولی ليس لیزه به ما افاده بل اصحابی او به تحلیل روز اخبار، و تحلیل روز اینشا آخر بین جون خبری به الاخبار از وان جون اینشایی ماقان به صدقی ایجاد مهم ایچ بین هم اندن اینشا یه بار معنا به لغن ایجاد هلو استاد رحیمه الله صابقاً تقدم ویزه کرر حالا کرام لبی اومن باعته این آوری لبی اومن انشاء ایجاد المعنى بلغب و بقارنی لعنه همی اقولها در معنی ایجادیها در ایجاد معلوم هم الانساخین ما یقول لبردی جهنی بمانن الوالا از خارجم به انشاء لا زائد او جلل مغفی خارجای تقرخ خارجای او چیلا نمی اینشا لحظا لحظا اسم ای این وجود آب را ایجاد آب مجم؟ اون را ایجاد کردیم وره میدونم نکرده آب را بودیم الان از اینکه ایجاده را فرطارتا تخولون او جلل مغفی خارجم خب حالا تلا لم ما، او جد از معمل اعتقاری خارجه و هو مجیر یعنی، و هو، به جعل طلب که زمت قبل، خود معمل اعتقاری. یا قولو استاد، معمل اعتقاری به نفس المواسده. شبه آنکار معنا که ان شرحنا؟ هم انسان از آراد افتداعاً يتصادر المعمل الذي عراده كم يفتره بالله؟ المعمل الذي أراده الإنسان في آر المجال جعد و مجيء الماء على درمسي ولا تصادره بناس جعد و مجيء الماء على درمسي بعد أن على ذلك أغرده بقوله جيني بمائه فالجيني بمائه ليس لبو أثنان لكن وجود الحقيقي و باهم. ولی وجود اعتباری، لانه وجود اعتباری پاره و آفر نفسي آفر نه. اينه قبل اين يبرزلاهو در نفرت موجوده. لا حجت ادراكي خارجان. دل نقصت بلا ادراك خارجان. به مجرد اين اعتبارو في مجال لانه محور، لانه امر اعتباري مالا واقعه. صراحتي آفر نفسي في مقام اعتبار. الفضل <سؤال> <سؤال> رحمه الله <سؤال> أن هذا المعنى الذي شهر بينهم الانشاء ويقاع المعنى بالأرزن يغارنهم أن هذا المعنى غير صحيح لأن في الانشاء ليس أي شيء من الى قائد لا الى قائد خارجي الحقيقي ولا الى قائد اعتباري فإن الى قائد اعتباري أول جب الى اعتبار يأخذ اعتبار النمز والاقائد خارجين لو قد الماء خارجا لا تدور بالإنشاء خدا مارخانه فراهم کنه و بنابراین بنابراین بنام خدا حالا لا تنقید این اخبار انشاء انشاءالله به ها اضافه اگر انسان شما در مقام اخبار و شما ها انشاء هو في مقام ادراص چون لا فکر علی اعتبار نفسان اسم علی وقرا يبرز على كار التاخر باسمه على الاخبار هو بدا خارج لعق ولا فهمت فيه. لا ان انشاء بدون الاخبار لا الانشاء على الاخبار منهار الجنه لا فهمت كلامه ابراز ترى انشاء ابراز على اخبار ابراز الا انه في الانشاء ابراز وللاعتبار الحسن اعتباره في نفسه فا ابرده همون و بینه همون و اما اخبار رید اعتبار نستن ابرازون للواقع ابرازون یحکی الواقع انسان یبرز و یبکر لغوا یحکی الوار به اسم اخبار مثلا ما تو دیدم در از بطران خیلی به حال لِاللّا لطول اخبار و لطول انشاء که در به معنى و واحد و با معنی معنى الهبران همه مبرد و الانشاء واحد و همه ادران حایدی خلاص از مذهلی قدس الله نفسی و لذا دماغن علاها دار فی باب الامر انسان یهرز بها اعتبار فی باب لا بزید فی بابل هم از شیعه الگیت و في از خرافی لحمت دید یرا فتح الگا فی تو میگون افتح الگا افتح الگا فقبل الابراز در اعتبار بزید فی بابل اغامر از عن جعل شیعه في وفي عن عن و تیباک تواهیم از محرومیت المچند انحال الفئر و ابراز ابرازون لی محرومیت یعنی ابرازون در اعتبار نفتان یا دیگر اتبار روز از محرومیت المتلف فیوبرید لا تفعل آزمان اما یورزم لیسا اکتا اخبار و انشاء فی بعض این شعر، فی بعض عوارض، یا اتلاف او کی بنمیکند که می‌گردد او، فی بعض عوارض، یا محروم است که می‌گردد مراقبه‌ای در اجازه نداریم با او صحبت کنیم. نداریم که از او صحبت کنیم. نداریم که از او صحبت کنیم. نداریم از اظهار شما کن کنید که قبلا نمي دوار شده. با با هر سال خب نظر مشهورشون قبلا نذاشت. در اگر این مثلا هم می تمام مقدمات شما مشهورونه میگه. ایشون موقع قبول نذید. مثلا گزارا نه نه. ایشون هم میگه هست. میگه ولی لا بنامه لا که جلده هم موجود و لا خیقت نهج جلده هم موجود لیس اونا خودوان خرم از امتراه از امتراه از امتراه از شهر لبیقه موجود محرومیت و ولی ابراز و ها، نه، چیزه بشتران، امتضاع میشه به وجود جو و به اون سریان تزه همه الکارونه، به امداع از یکی هم، اون یه قابل معنی هم، با این یکی تا یه تحلیلی که از نظر قانونی هر بخوان، اونها برای در آنو محروم با یه تحلیل میشونه، بزمعال میره نه، به هم یک جا نمیداشه به خود تبرای, از یا از در در در تبرای, تبرای تصور اعتبارو آمین همونی تیاره افرادشون را اصد یابن نداره یه همین در قامانی نداره ایچه باید کنید چرا؟ تبرای تصواریشان اعتبارو آمین همونی تر آخرین که بندن به زمراه از کن این مادان گرم که اعتبار نیست؟ اعتبار ابروز باشه. می‌دونم اعتبار اعتبار می‌شه، اعتبارش که مبلغ اعتبار لازم این اعتبار ما مبلغ می‌دونم اما ایشون اعتبار همونه هم در است. ما واقعاً خبر اعتبار نیست. تا اعتبار نشه اعتبار کنم، اعتبار من اون مادانه اونی که بکنه قاملی دره، آشار قامل همون ابرازشی تشکیل که ولی هست ولی ازام که از ایشون نمی‌جیم مطلب داره بازه چو میا... چون این مطلب ایشون نمی‌فرمونم این مطلب ایشون میاد چون اعتبار رو گذار می‌کنه و تا به همون خواهرون اعتبار می‌دونه ممکن است که داره اعتبار ما سر از باشه یا از باشه نگستنیم بحث به شما لگه یک تبرت است شما یک ابراز در به یک اعتبار رو کردید وقت تبرت شما از که داره یک ابراز یا اوثر یا عذیب از اعتبار باشید که در مورد تکلیقی هم مثلا شما میگید اگر این آقا تبداشت مثلا اگر آقا نمزش غیر طبیعی بود تبه مال نمدنه. با مثال آماده. خب این که میگه اگر نبز شهر تولیل تولماز داره چون عمر واقعی و شهن شما واقعیه، اقراض اینجا خط واقع اوتر باشه از اقراض شما یا از یک باشه میگه اگر نبز سرعت داشت این میشه تولماز نه ممکن در تولماز مثلا اگر نبز سر مطارب هشتازه اگر ساهنش تا نوز و 95 ترمازشون سرعت سر براس هم بود دارم نه؟ سرعت در ترماز واقعیت باشد اون اطلاع رو که ابراز... مثلا اگر سرعت باست این شامل اشتادیه سه هم میشه؟ نه، باید سر است. چرا؟ چون شما در امور واقعی به دسته واقع اول نمیشه به حال خودش محفوظ شد نه، چون ایش به ما هم نسته و اعتبارن اعتبارن و ابرازن ها فهل هو یلسه دن به هردا ام یعنی یکیم بنامه همه هلا مشکی ان یکون الی ابراز او الی اعتبار او من اعتبار بنامه ها به ما محل غیر شیوار لذانه که لابد ان تو دخل رو و تو مثل تحلیل اما بنا من حالا مسئلت من یرا ان الابراز بعد لا يمكن نكون ابراز او اولا عباریتا هم به هو الابراز. لا بمقدار معتبر في فی افق الله ذلك و ادعب و امید تدقه یاده هو ان الابراد سی عن ما في والاعتبار طائعاً بالنسبة من يبرز ما ماداً خبتاً لأن هذا الشيء في الناس ولم يبرز الآن وما دام في أفق الناس ليس قانونه؟ قوانوا بالإدراس هل يكون في الناس في الناس أوسع لكن لا يترتب عليه هذا؟ ولكن يبرز شيء موجود هذا المقدار الذي أدرد يكون أخاذنا اعتبار يمكن أن يكون في مدام وشان اون که از ما اعتبار اوسع باشه خب همین این بگی. حتی اگر اوسع بود ابرازش که نه همون ابراد قانونه نه ارتبار بزر اون کنه اونه اونه اون اونی که آثار قانونی داره همون ابراد بگه اما اگر در حقوق نهست ارتبارش اوسع بود اون لفت یه جمعه نداره مشکل سانوی یه مشکل در کار لفت... انجام نداره یه لفت رفتی از یک واقعی نواشی بایی لفتی لفتی لفتی لفتی لفتی رو با لفتی اینجا درست همین میکنه مرادشون از اینکه که همون مقدار که ابراز مثلا اگه گفتی این جاک اگه خوب، این ممکن از علت خوب خوبس همشتو دیگه درمزر اما این مقداری ارکاز که درمزر خواهر ولی توفق رفت اعتبار شده دیگه اما در انقرار و و ابراز ایشون باید بگه ولی ازا بگیشون ابراز هیچ کار نمیکنه نه ها چرا؟ ابراز دیگه مشکلان شده خوانیم لب معنای این در بعا قانون خبانیم براد شده در بعا قانون حتیزم هست قانون حالا منجه هستین و منجه هستین قبرا و کرارن لاجرن استاد اشتبه هم را ما بین از دلالات سیاقیه الاتی من فکر مکنم و بین ما هون من مدلول ابراز از دلالات سیاقیه خب معروه های متکلند متکلدم یک رسی ابراز ریتر مدلولا. لا اخبار ولا و لا اینشا ابراز امر انتظائی یا دلالت یعنی معنادار. الانسان لغا جایزه ایدونی ابرد لها به منم ابرد مونم اخبار حقیقت از واقعه ابراد به نفسی موگوان به اخبار و انشاء البراد یعنی ف... ایو امسان نیتکنده نلتزع من خالتی یعنی هو ابرد ما آه. آه. آه. آه. آه. آه. ما باقیدیم ابراز ابرا فائل هست یعنی درداد سیاری یعنی یک کار انشار ایغاغ و وقتی گفت قم ایقا کردیم این ما میگیم انتظار میکنیم ابراز ما که نفسه انتظار میکنیم مثل نسبت طلبیه رو بعد از تلل این از معنی ارتداری اینا دو در نیستن، تفسیر نیست این ده در ضبور در ضبور انتظام میشه، مثل معقوله ثانی از اون او در حقیقت، هلون موسیقی از نمه یعنی او در اعتباره، این اعتباره، اعتباره، اخ آها در لم یکم موجود هست، فا بعد هم نهو او یا دروفی مقامل اعتبار نمتن به اومده و حاگرسته نهو افراز و حاگرسته و نظاف یا حاگرین جهده سفر بیندن اخباران اینشان زده ها به عنوان مدیون سیاقی مدیون سیاقی لیسه تفسیرنده اینشان به ماهو اینشان وارد ها به نمتنه یعنی زید دخل الگرفه دخل الگرفه چیگه آن؟ لیکن ننتظر تحت فرد ساره تحت فرد یونتظر آنه دخولی به الگرفه نه انشار عبارتون ان ایقاع المعنى فی به مقدار ابراز المعنى یوگه و یک و یوشر و یوجد فی رعا در شد طبعا إذا فرضنا نا اوغعه المعنى معنی به عمله عمل عملون ارادی تا به عمد مقدمان اون به اسم مقدمان و آدم نقص تکلم عمدون فنقود ما في حقوق هسته حاضر انتظام من عمله بید لاعنه بود اشتباه سارد. اشتباه هست به هذا داری یونتا در اومن عملی مثلا عمل شخص الهروفیان مثلا شخص اخبه سواک فنبول مثلا هو استخدم از سواکی ازنامی خب طبعا لمایسته در اون سواکی اسنانه، طبیعه با ازنام رو، با هو استیاه با ازنام لیکن طرف تبعنی عنوان از تنبیل، ها ده یه حنابین انتظاری صانوییم النبی اوجدهو عن السبار فالنبی هو اوجدهو و حققهو هاد المعنا الوجود و طلب چیزی آل اعتبار هاد طبعا نفنون ننتزقون من عمل عنوان نقول ابرد ما کی افقه است عنوان انتظاری على عیدن و عیدن اطالف کلافی خبه لم شيء شيئاً لأنها العتبار في حقوق النفس موجود هو عبرت العتبار صحيح كلامنا أن العتبار ما في الناس لا في حقوق النفس لا حذر له ليسا اعتباراً ولا له الشيء ولا يساقين شأن هم شيء خبه هم احتمامه و حذره به دقرات فأذر نبقى مراد نفس الأمر هو لا لا لا لا خبه لا في نفس لا في مثلها حسنا لا لیسه مجرد قصور لیسه به رو که که در اون رو گرفته امر اعتباری نیست در حقوق نفسکی اعتباری علایم <مترجم>